بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرق والنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد من علم الدنيا بخانا ولي آنقاد كلم يخانا يعدنا ميقلا بسورة كاملة نتيجة مدفول دستنا ميورا برای یادگیری بهتر نتیجه بهتر شکار کنند. برای یادگیری بهتر بهترین راه این است که اول دعا. رب زدنی نی علمه. دعا حضرت موسی عليه السلام و صلات. دو دوری از گناه. گناه حافظ در از. ایبودن قلب از محبت غیر الله ارتباط نامشروع قلب اگر مشغول باشد با کسی دیگر خواندن اگر هرچیم چند یاد نمی باید قلب فارغ البال باشد کسی دنبال انوار الهی هست نور علم هست باید قلبش خالی باشد از غیر الله چهار خواندن باید در محیطی بخاند که پرتی نداشته باشد اگر پرتی داشته باشد هر چیم بخاند فایدی ندارد باید ذهنش خالی ها. پنج منجام خواندن نقطه برداری یا کردن مطالب یعنی باید زماق، چشم و قلم هماهنگ باشند و پنج نخوردن پنیر پنیر هم حافظه را ضعیف میکنه آتفا پنیر بوده آگه دیگه می آید شیمای را پره دو آید دغدغه فکری نباید داشته باشه هفت استعمال اصل هشت استعمال با راغن با روی سر برای قوی کردن حافظه و هر و سیاه. یعنی؟ فلفل سیاه. سیا. سیا. سیا. سیا. با اینو عارفين؟ بوارتی، ها اینها حافظه رو قوی می‌کنه.